اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الكونين جد الحسن والحسين عبد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعسومين وبعد عن أبي جعفر عليه السلام قال كتب الحسين بن علي عليه السلام فکأن الدنيا لم تكون وکأن الافراه لم تزل السلام عليك يا با عبد الله وعلى الارواح التي حلت جمعا منع الله السلام على الحسين ادیت تخر و اللهو خون دل مارا چیا جای چار برین درد به مداوا را آیان که چرخ بر افروخ آتشی در که برا رسیدن سال زنبار و درناک شهادت نواده پیامبر خدا را همه با هم به اون موعود ادیان عالم اون که همگان از بشریت قبول دارن مخصوصا جامعه اسلامی حضرت مهلی آل محمد اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه هم تذلیت حرف میکنیم و همینطور برای همه جامعه انسانی و جامعه اسلامی و جمع خودمان عرض تغذیت دارم بجات تقدیر و سپاسگزاری کنم از همه عزیزانی که در مجلس کنونی تشریف آوردن از مولوی صاحبان، از همه مسلمانان و همه همسایگان محترم ما که امروز در خانه خدا در ازای نواده پیامبر خدا شرکت کرده هم. تقدیر و سپاس گذاره می کنم و همینطور ارد می گذارم تلاش های شبانه روزی نیرو امنیتی و استخباراتی است، امارت اسلامی افغانستان را که واقعاً امسال امنیت بسیار شایسته و خوبی را در سرتاسر افغانستان به ویژه کابول و همچنین عزیزان ما که در این ساحه امنیت گرفتن واقعاً از تلاش های شبانه این کوبان تقدیر و سپاسگزاره میکنیم امیدوار از هماته که اینها خداوند متعال در راستای زهمات و خدمت در راه اسلام و مسلمین و مؤمنین قرار دهد و خداوند متعال اجر عنایت کند انا اشکر واقول و لمکتب المرجع سماحت مرجع الدینی آیت الله العظمه السيد علی السستانی در مساعدتی هی مجلس نال و بدله شکران جزیلا و همینطور بجاست یاد آوری کنیم از بانیان خیریه که هر نو زحمات را در راستای جلسات حسینی کشیده و میکشان نظر کردن خداوند از همگانشان قبول کند و جاست یاد آوری کنیم از اون علویه که با بنای مسجد شریف سبب شده است یک بار از مسلمین و مؤمنین رو گرده هم جمع آورند و بر این اساس به معرفتشان افزوده بشه تقدیر و تشکر میکنم همه ما و شما میدانیم حسین علیه السلام نواده پیامبر خداست بزرگانم امروز جلسه ما امام را معرفی کردند. خسینم منی و انا من حسین. حسین از من است و من از خسینم فرمایش پیامبر خدا معروف هست. فرمایش پیامبر خدا خدا اون کسی را دوست دارد که حسین را دوست داشته باشد. این الحسین مصباحالخدا و سفینه نجات. اینها همهشون روایات هست. اما علیه صلات و فرد ناشناخته شده نیست که فعلا فرصت گرفته بشود اما علیه صلات و شناخته شده هست و در پیش همگان اون که مسلمان هست حسین رو واجب است بشناسد و باید عرض گذارد و برایش احتمام ورزد اما اون چه که در این میان یاد آوری بشود خوب هست از آموزه های حسینی درست آن عن ابی جعفر علیه السلام قال کتب الحسین بن علی الى محمد بن علی علیه علی السلام من کربلاامام عل الصلاة والسلام از کربلا یک نامه برای برادرش محمد حنفیه می نویسد در این نامه چه می نویسد بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین بن الى محمد بن علی و ومن قبله من بن هاشم از تربلا به برادرش نچنین نامه مینویسد از حسین ابن علی به محمد ابن علی و هر کسی که از بنی هاشم این نامه بهش می میرسد اما بعد فکان دنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل مثل این است که دنیا اصلا نبوده و مثل این است که آخرت هرگز از بین نمیرود سلام. اما علیه سلات و سلام فقط دو تیکه دارد آخر سلام نیست بستد فکه دنیا لم تکن مثل اینست که دنیا هیچ نیست و نبوده و که انت لم تزل و مثل اینست که آخرت همیشگی و پایدار هست این منطق حسین هست وقتی ما به این منطق نگاه کنیم این همو حمت بلند حسین را میرساند مسلمانان لازم است که با حمت بلند و با دیدگاه بسیار حضور حرکت کنند و مسیر کفار و دشمنان دین را با پیشبینی و هموار نسازند مسلمانان باید در گرد قرآن و اهل بیت جنب شوند زیرا و بر اساس قرآن و بر اساس اهل بیت علیه و سلام تشکیل شده نيست جمله معروف است ها گفتند شاید روایت است در این جمله آمده است که همه خاندان اهل بیت هدایتگر و, و نجات‌ده هست. اما کشته حسین سرعتر نجات میدهد امیدوارم دقت فرمایید بر محمد علی محمد صلوان. وقت حسین چون این چیزی هست، واقعاً حسین است که ما و شما را در افغانستان گرده هم جمع آورده است. در مجالس دیگر کم این, چون این جمع می شویم. برای این اساس کشده حسین سریعتر همگانمان را نجات خواهد داد. اسلام دین فطرت است. از ها یک نوع از فطرت آدمی است. شواهد زیادی وجود دارد که پیامبر اسلام، گریه کرده است ازاداری کرده است وقت جدش حضرت عبدالمطلب المتقلیف شد پیامبر اسلام گریه کرد وقت امویش ابو طالب مرخم شد حضرت پیامبر گریه کرد وقت بالای قبر مادرش رفت حضرت پیامبر گریه کرد وقت ابراهیم و قاهر پرزندان پیامبر مرخم شدند پیامبر گریه کرد وقت حمزه سید و علیه السلام شهید شد در کوه احود و جنگ احود پیامبر اسلام نه تنها گریه کرد که دستور داد یک ادهه باید برای حضرت حمزه گریه کنند و مجلس ازاداری برگزار کنند پس مجلس ازاداری یک نو مجلس و یک نو است که از خود پیانبر مانده است همینطور وقت ابو بکر خلیفه مسلمین مرحم شد عایشه دختر ابو بکر به با ام المؤمنین مجلس عذا برپا کرد اینجا نقل میکنن میگن خلیفه دوم دستور داد که عذاداری برپا نشه بعد سخنانی که از آیشه ام المؤمنین نقل شده است این گونه است که به خلیفه دوم اون سخن پیامبر نادرست رسیده است از پیامبر یک جمله اینچنین آمده است که میت برای میت ازاداری برپا می شود میید خودش عذاب میکشد بر اساس این روایت گفتن که باید برای میت ازاداری صورت نگیرد بعد آئیشه اونب المؤمنین چی می گوید؟ ایشان می گوید این روایت اصلش اینطوری پیامبر از بالای قبر یک یهودی می گذشت اونجا فرمود که این میه دارد عذاب می خاندانش برایش گریه میکند این روایت اصلش این گونه هست لذا خود عایشه عمول المؤمنین برای ابو بکر خلیفه مسلمین مجلس عذاداری برپا کرد از آن گذشته عمر خلیفه دوم مسلمانان هنگام که مرگ نعمان را شنید رفت به سمت مسجد و بالای منبر رفت خطبه خواند و مرگ نعمان را به مسلمانان خبر داد و همانجا گریه کرد همین خلیفه دوم وقت مرگ برادرش زید را میشنود گریه میکند وقتی یکی از دوستان زید را میبیند گریه میکند میگوید پولانی زید را کنار نهادی و آمدی این در سیره پیانبر و سیره خلفا و همینطور تا آ... همین لحظات سیره گریهداری و مجلس عزاداری وجود داشته است و بوده است ما در بین سلاطین اهمی از سلاطین سلجوقی و افغانی ها و غیره خی... غیره هم حکومت های به وی در ایران و صفویان و بقیه هم این سیره عزاداره رو داریم در در سیره مسلمانان تاکنون کنون چنین چیز وجود داشته است اما کسانی که بر عزاداره مخالفت کردند این نکات را عرض می کنم که همگی مؤمنان خیال نکنند خدای نقصه در مجلس در مسجد خدا نیایند و عمل نارشائس در بگیرد اولن کسانی که با عزاداره مخالفت کرد شامردنی عبدالملک بود ایشان چون خودش از جمله کسانی است که دستانش به خون حسین و حسینیان آلوده هست لذا این روز آشورا را نه تنها روز عزاداری بلکه روز فرح اعلام کرد روز جشن اعلام میکنند و ها دا یوم نفرحت به قال زیاد و آل مروان به هم الحسین روز عاشورا را روز فرح و شادی اعلان کردن آل زیاد و آل مروان به کشتنشان حسین را. ای اعلام شدن روز آشرا به عنوان روز مبارک و روز شادی مال دشمنان حسین هست. نه مال کسانی که واکن حسینی هستند واکن محمدی هستند واقعا محبت پیانبر و آل پیامبر را به سینه ایشان دارند. دومین افرادی که همینطور این روز را روز شادی اعلام کردن بنی اباس هست است که با هم واقعا با خاندان اهلوبیت مشکل داشت مروان در حضور حشام مجلس جشن بپا می کند بنابر این متوجه باید همین همینطوری که مولویای گرامی هم یاد کردن باید توجه کرد هر مسئلهی که دشمنان دارد بین ما ایجاد رخ نمی کند اول باید بررسی کنیم چی طور حفظیانی. همه چیز برخلاف اسلامی نیست وقتی خلفا خودشان دارد ازاداری برپا می کند. ما به ادوان یک مسلمان و یک مؤمن چرا چون این چیز را برگزار نکنیم ازاداری که خود بر اسلام در هنگامه های ولادت امام حسین علیه سلام ازاداری می عزاداری میکند ازاداری که حضرت آدم عزاداری کرده است عزاداری که همه انبیا و اولیای قبل از اسلام برای حسین عزاداری کرده است این را در کتاب های تفسیر بخوانیم در تفسیر کاف ها یا هندساد بخوانیم چنین چیز موجود هست. در قرآن کریم ما و شما موجود هست. <تصفيق> حضرت یعقوب علیه السلام برای فرزندش حضرت اسماعیل چقدر گریه کرد برای فرزندش حضرت یوسف چقدر گریه کرد این در قرآن کریم هست یا نیست پیامبرانی دیگر چقدر عزاداری کردند؟ اگر این سیره و این عزاداری درست نباشد چه معنی دارد که در قرآن کریم از یک پیامبر یاد میکند که برای فرزندش که حضرت یوسف باشد گریه کند این چه معنی دارد؟ پس این مسئله عزاداری مسئله قرآنی سیره پیامبران هست سیره پیامبر اسلام هست چرا باید عزاداری کرد؟ چه حکمتی در اینجا وجود دارد؟ اولین مسئله که باید در اسلام به آن توجه کرد همه باید توجه کنند کسی که محب به پیامبر خدا و آل پیامبر هست لازم است باید عزاداری کند چرا چون پیامبر می‌فرماید قول لا َأَلُكُم علیه أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فی القربا من بخاطر زحمات که به خاطر اسلام برای شما کشیدم هیچ شما مطالبه نمیکنم جز ما موزتی با اقربا و دوستانم کسی که کسی را دوست داشته باشد اگر دچار مشکل می شود، ناراحت می شود یا نه وقت ما مسلمان هستیم وقت نواده پیام بر شهید میشود نباید گریه کنیم و نباید ناراحت بشویم این در قرآن هست و من یعظم شایر الله فانه انها من تقبل القلوب این در قرآن کریم هست هر که شعیره خدا را بزرگ برشمارد این بیانگر تقوای کلبی پس همگان باید اشگره اهل سنت باید اشگره اهل تشیع باید اشگره و من اینجا باز هم بار دیگر گلایه میکنم از همسایگان خودم از اهل سنت گرامی کسانی که از سنت پیامبر داد میزنند چرا مثل عمارت اسلامی افغانستان سالها درون مساجد مجلس اضا برپا نمی کنید چرا نمیایید در مجالس حسینی شرکت نمیکنید چرا چنین نمی کنید این در شیره پیامبر ما و شماست اگر نیست این قرآن کریم ما و شما میفرماید برای ما و شما اولین مسئلهی که در این زمینه وجود دارد محبت است اونی که میخواهد محبتش را در پیشگاه خدا و پیامبر خدا به اثبات برساند باید در عزای خاندان پیامبر ازادار باشند و در خوشحالی آنها خوشحال باشند این یک دو ازاداری انسان میسازد چطور انسان میسازه؟ هر بار در مجلس چه شرکت کنیم برای ما شما وعد نصیحت میشود شود؟ و نصیحت شد ما خود را کنترول میکنیم انسان میشود اسلام برای انسان سازه هست یعنی پیامبر فرمود این نمابعه تو لی اتم ممکار اخلاق پیامبر بر رسالت مبود شدن تو اخلاق رو کامل کنم مسلمانی که به اخلاق باشد چی کنیم اون مسلمان را؟ مسلمان باید نماد اخلاق و زیبایه ها باشد مگر ما اونتما نشنیدیم که پیامبر با اخلاقش بیشتر موفق شد شنیدیم سومین مسئله ای که ازاداره ها از اثراتش هست جامعه سازی من با اخلاق شدم درست شدم تو شدی، او شد خود به جامعه جامعه ساخته شد یا نشد؟ از ازادارها انسان می سازد، ازادارها جامعه می سازد، ازادارها ارزشها رو در بست پی دارد، ازادارها محبت و مودت می آفریند، ازادارها فردا در پیش پیامبر آدم را روسفید می سازد، در صحرهای محشر از افراد حساب می شود که نسبت به آل پیانبر بها و ارزش گذاشته است، این است ازادارها، دعوت میکنم از خودم از همه جامعه شیعی از همه جامعه سنی که با محبت پیامبر و آل پیامبر یک بار دیگر ایمان آورد قرآن میفرماید یا ای الذین آمنو عاملو این تعبیر قرآن از خوب دقت کنید این صلوات هم بفرستید ایمان کریم چی نمیگه آدم های کافر مسلمان شوید مؤمن شوید میفرمایید یا یه آمنو ای کسانی که ایمان آوردید آمینو، بازم ایمان بیارید اینطوری. اگر تا هنوز به اثر توتعه دشمنان و کفار ما و شما توتار شده بودیم برگردیم به اسلام دوباره این ایمان خود را کامل کنیم یا ایها الذين آمنو آمینو ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید باید عضاداری کرد شما میدانید روزهخانی معنیش چه هست اصلا روزهخانی یعنی چی روزه یک کتابیست که توسط برادران اهل سنت نوشته شده است حسین بای قرار با شما اسمش رو شنیدید حسین باقرا با از جمله فرماندهان یا از جمله پادشاهان افغانی هست یا نیست به دستور ایشان شخصی به نام کاشفی در حیرات ما و شما مینویسد به نام روزه این روزه اولین کتاب است که به زبان فارسی نوشته شده است و مصیبت حسین و حسینیان در این کتاب آمده است. کتاب به زبان فارسی بود مردم می خود همه کتاب رو می از رویش می خاندن. لذا از اون بود معروف شد می گفت برو روزه بخون. یعنی کتاب روزه رو بگیر بخون که مردم ازاداری کنند مجلس ازاداری روزه خانی نیست چرا روزه خانی می چون که نام اون کتاب روزه بوده است. این کتاب توسط یکی از اهل سنت نوشته شده کتاب های دیگه هم در این زمینه هم این نبوده که شیعیان سردم داره این کار باشد شیعیان بیرق حسین را تنها بلند کرده باشد اهل سنت نقش داشتند. کجا شدیم روز نقش این خوبانی مسلمانی ما باید تعمل کرد باید تاریخ را دید باید مطالعه کرد این سابقه اظهار محبت و مودت به شهدای کربلا انشاءالله که همگان و شما بیتوانیم از این مجالس عظیم فیض ببریم حالا همینجور صحبت رو تمام کنیم ساعتم گذشته است همه علمای محترم مولوی صاحبان گرامی از سیره حسینی در مساجد. که معروف هست از اهل سنت ما سیره حسینی را یاد کنند در اونجا واقعا شهادت طلبی بوده اند. در سیره حسینی وفاداری بوده اند. در سیره امام حسین علیه و سلام سال شهادت را زیباتر از اثر در وجودشان حس می در سیره حسینی دفاع از حرم آل پیامبر بوده است. مسلمانانی که خود مسلمان می دانید خودم را میگم و شما خوبان را میگم ما که محبت پیانبر و آل پیامبر را در نمی دنیم چقدر از پیانبر و آل پیانبر یاد کردیم چقدر به این سیره از این آشنا هستیم در حادثه کربلا دفاع از دین است ما و شما چقدر از دین خود دفاع کردید؟ در شیرا کربلا بیانگر حقایق است ما و شما چقدر حقایق را بیان کردید؟ حتی در قسمت روزه آشورا، حتی در مسائل دیگر حالا از اونها میگدریم مجلس را همینجا به پایان میرسانیم بوندین قسمت علاوات بر پیامبر و آل پیامبر اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على يا اغا عبد الله وعلى التي و ما ولان آی ن توجه نا و الله وقدمناك بين يدي ببين يذاي حاجات ن كسان كياريم يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجیها اشفع لنا عند الله مؤمنين مسلمانان شئهو سنين فرا رسیدن شهادت نواد پیامبر تند بر شما تثمیت سیگم مسلمانان سنیان شیعیان میدانید نواده پیامبرتان با چه وزن فجانه شهید شمون در صحرای کربلا صبح آشورا همه آماده رد شدند جوانان شیعی و سنی توجه ولین کسی که از خاندان پیامبر آمد از حسین اجازه میدان تلبیدن گرفت یک جوان هست جوانی که بودن 17 ساله یا 18 ساله یا 27 ساله بودن این جوان کی؟ این جوان فرزند نواده پیامبر شماست اسمش علی اکبر هست آمد محضر بابا ارزکر بابا جان اجازه بده میدان برد حسین اینجا چون پسرش بود نمیخواهد در راه خدا مانع مرگ پسرش بشه فورا اجازه داد اما همین که علی اکبرش روانه میدان شد حسین یک نگاه معیون و بدون به دنبال فرزندش بعدش دستانش را بلند میکند به پیشگاه خدا چنین شکایت میکند خدایا تو شاهد باش. من کسی را به جنگ انکان دادم که از نظر اخلاق از نظر ظاهر شبیه پیامبرید هست هرگاه دل من به پیامبر تن میشد نگاه به علی اکبر من می میکردیم دومین فردی که آمده است میدان میگیرد کی فرزند برادرش قاسم هست قاسم را شما میدانه چند ساله هست قاسم سیزده ساله است. جوانان سن نوشه متوجه باشید قاسم فرزند برادر حسین هست یگانه فرده که زیر دست حسین بزرگ شدند همراه برادر شبدالله قاسم مثل فرزند حسین میماند چون ده سال زیر دستان حسین بزرگ شدند قاسم آمد صدا زد آقا جان اجازه میدان بید حسین اجازه نداد سکوت کرد هی hey, قاسم اجازه می طلبد. حسین اجازه نمیدهد نقل می کند. حسین هنگام اجازه خواستن قاسم منقلب شده بود وضعی به خودش گرفته بود که در هیچ یک اجازه گرفتن ها این چنین وضع برایش پیش نی بود قاسم اجازه می طلبد. حسین سکوت می کرد عشق می رید. آخر قاسم رفت کنار مادرش شکایت کرد گفت عمو برایم اجازه نمیدهد مادر قاسم از بابای قاسم نامه را داد گفت برو اینو برو به نزد عمویت ببر در این نامه چی هست قاسم نامه را آورد به دست حسین داد حسین دید برادرش نوشتن لا یومکه یومکه یا ابو عبدالله هیچ روز هم همچون روز آشرا نیست من در کربلا نیستم قاسمم رو از من قبول کن اینجا حسین به قاسم اجازه میدان رفتن میدهند در تهرای کربلا چون این وسیع بودند اما دلها بسوزد براید حسین هنگام که همه شهدا شهید شدند حسین یک نفر و تنها است تا از اسلام دفاع کند نقل میکند حسین نیزهش رو بر زمین زد همونجا سرش رو به نیزه بی کسی تک یاداد. صدا زد حلمن ناصر ینصرنی آیا کسی هست که از حسین دفاع کند یاری کند حسین میخواست میدان برود خواست با اهل حرم دفاع کند اهل حرم آمدن اطراف حسین را یکی یک صدام زند حسین ما را به مدینه جد من بر برسون یک صدام زند حسین برادرم چی شد دوتی که از ودای حسین یاد کنم امام سجاد علیه السلام و سلام بیمار هست داخل خیمه هست حسین رفت میدان برگشته حسین وارد خیمه امام سجاد شد امام سجاد نمی از جا بلند بشه اما جانش زینب آمد امام سجاد را بلند کرد امام سجاد از پدرش پرسید آقا جان وزیت چطور هست اینجا زینب نقل میکند زینب میگوید من از وضع شهدا چیزی با امام سجاد نگفتم زیرا بیماری امام سجاد زیاد نشود امام سجاد پرسید پدر جان وضعیت چگونه شد امام فرمود شیطان بر این مردم چیره شد خونها ریخته شد امام سجاد صدا زد امو پدر جان امو جانم عباس چی شد اینجا رنگ رخ زینب می چون تا هنوز قتل عباس نگفته است حسین می گوید اموید شهید شد امام سجاد اشک میریزد از برادر سال می کند یکی یکی شههدار سوال میکند وقت مشنورد همه شهید شدند امام سجاد گریه میکند و غش میکند وقت به حال میآید دلها بسوزد انتقارو خیلی سختند وقت به میآید صدا میزنه اما جان زینب برای من عصای بیاور برای من شمشیر بیاور حسین صدا میزند نور دیده از را چی میکنی شمشیر را چی میکنی امام سجاد ارز می کند بابا جان من بیمارم توانای حرکت و ایستادن را ندارم می خواهم با اصا تکیه کنم با این شمشیر در راه فرزند پیامبر دفاع کنم چه سخت روزگار است حسین فرزندش رو دلداره می روانه میدان دان می شود آی چه سخت روزگار است دلها بسوزد چرا روزگار تیره و تار نمی حسین رفت سمت میدان نگاه صدای شند محلان محلام یبن زهران حسین دید خوهر زینب آمده خوهر جان چرا آمدی زینب ارضه کرد برادر جان به یاد وصیت مادرم افتادم حسین به احترام مادر استاد پاین آمد مادرم چی وسیعت کرده بود زینب برزه کرد برادر مادرم وسیعت کرده بود من در کربلا نیستم بجای من گلوی حسین را بگو. زینب با برادر در خدا ها کرد برگشت حسین رفت سمت میدان ناگاه باز هم صدای را شنید این صدا صدای ضعیف است حسین متوجه شد دختر کوچک جست صدا زد بابا جان با تو حاجت دارم حسین می دختر نازنین چی حاجتی داره دختر صدا می زند بابا جان تو از از پای نیای نمیگ حسین از از پاین پای از دختر جان چی میگه دختر ارزه کرد بابا جان مید با میدانم تا ساعت دیگر یتیم میشوم میخواهم همین دمرا دم چون یتیمان در بغل بگیری حسین دخترش رو دلداری داد رفتم دو. نمیشو از ذکر جانسود حسین رو بر زبان ها دلها بسوزد برای زینب و همگامه که آمد دید حسینش زیر سم ازبان علا لعنت الله وم الظالمين سيعلم الذين ظلموم أيمنقلب ينقلبون يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نیا و جهن لنا وعند الله یا و جهن وعند الله فشعلنا وعند الله الهی بوجه الحسین یا الله يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا حميد وبحق محمد يا علي وبحق علي يا فاطر وبحق فاطمه يا محسن وبحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین اللهم بحق سطعت المعصومین من درهیت الحسین اله مرا را از ازاداران نواده پیانبرت قبول فرمای اله مرا در پیشگاه پیانبرت تفید رو گردان اله مشکلات گرفتار ها نامنی ها بیکاری ها بر طرف فرمای و واسه و حلال حنایت گردان عاقبت امر من را ختم بخیر گردان دستان ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل و بیت پیانبر من کم و کوتاه مگردان اله حوایج مشروعی همه محتاجین متمسین دابانی مسجد جمع مخصوصا ای ورقی این ورقی که آمدن هوایج همگان روا فرمای اله محبوسین بگناه آزاد گردان اله دشمنان اسلام رو به خودشان واگذار اله دشمنان اسلام رو ناکام گردان اله اسلام و مسلمین در سر تا سر جهان پیروز گردان اله زهماتی که در دستگاه حسینی کشیده می شود امنیتهایی که توسط مارت اسلامی گرفته شده است توسط عزیزان انجام گرفته شده است فرداشی ها نوحخانی ها سخرانی ها از ها سینزنی ها از همگانمان قبول بفرمای فرمای. مشکلات جهان اسلام مخصوصا مشکلات افغانستان حل فرمای، با قوت سمیمیت بین مسلمانان حاکم فرمای مسلمانان یا قانسوں رو بینشان ترکم ایجاد فرمای به حق الحق به حق نبی المسلم به حق صلوات علی محمد و محمد